نمی دانم از در گلیاس بو ی انبر دیگر نمی آید چرا ای گل ان فان سحر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم تشیش شیکاس از فرا و پدر دل بتنگ و مد کن هرگز بر خزان وجود نو بهاری افزر نمی آید کونون هرگز بر قزان وجود نو بهاری افزر نمی آید نمی دانم از بر گلیاس بوی املر دیگر نمی آید چرا ای گل ام فغان سحر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم چشیش شگست از فراغ قدر دل بتنگ آمد کنون هرگز بر خزان وجود نوبه هاری احزر همی آید کنون هرگز بر خزان وجود نوبه هاری احزر జరీ బుల్ గన వతన పీర పర زمشرق ان آفت بشرف پای با که خدا در نمی آید زمین از داغش بخود لرزید آسمان از غم خون فشانی کرد خدایا این شام بی پایان نالوزاری سر نمی آید خدایا این شام بی پایان نالا او زاری سر نمی آید نمی دانم از بر گل یاس بوی امبر دیگر نمی آید چرا ای گل انفغان سهر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم అసలు భుజ నో బీ ఆఫర్ నమీ ఆయన కుర అజాని భుజూత నో బహారీ ఆమి ఆయ بمسجد پر روان نگان خدا بهره گفتارش دار همجمن چرا آخر شمع جان فروز ای جان پروز باز به سوی منبر نمی آید الا ای ابدول عزیز ای جان روح پاکت سوی خدا پیوست پدر جان جز مایه مهربت دی گریبر صغَر نمی آید پدر جان جز مری مهرت دی گریبر صغَر نمی آید نمی دانم از بر گل یوس بویم بر دیگر نمی آید چرا ای گل آنبان سحر از وجود پدر بر نمی آید اورو بس غم هم چشیش شکست از فراق پدر دل بتنگومت تو من هرگز باب خزانه وجود نو بهاری افزر نمی آید تو من هرگز باب خزانه وجود نو بهاری افزر نمی آید بلوچستان از عروج پدر مثل عبر بحار گریه ها سرداد زخورشید شال افروزان آف تا بیبر تر نمی آید در این دنیا هم چوبه غمبر پاک و پاکیز زندگانی کرد به قول آن نائب برحق چون عزیزی ادهر نمی آید به قول آن نائب برحق چون عزیزی ادهر نمی آید نمی دانم از بر گل یاست یامبر دیگر نمی آید چرا ای گل انت غان سحر از وجود پدر بر نمی آید قلوب از غم هم چشیشه شکست از فراغ پدر دل به تنگ آمد چون نهر گسبر خزانه وجود نو بهاری اخضر نمی آید چون دل گس دار خزانه وجود نو بهار ی افزار نمی آید مسیحای مردمان دیار روح ایمان بر جسد ما آورد از اشک سوز دویه او دیو داد برکش بر کشور نمی آید خدای وندار روح راهبر ما در نعیم و بهش جاودان گردان که او در توفان و سیل زمان چون شغای غپر پر نمی آید که او در توفان و سیل زمان چون شغای غپر پر نمی آید نمی دانم از برگل یاس امبر دیگر نمی آید چرا ای گل آن طغانه سحر از وجود پدر بر نمی آید طلوع از غم هم چشیش شکست ازل فراغ پدر دل به تنگ آمد چون نهر گس بار خزانه وجود نو بهاری افزار نمی آید چون درگس భోజు نو بہار یہ احزر نہیں آیت راہ ایشان را اید آمدہیم با تمام وجود سر فرازانے یہ انداریم یادگار اشرا هیچ گزان دز کفر نمی آیت مے عشق اشرا اگر نوشت ہر مسلمانی با خدا گردت شراب جاناں نای ساقی با شرابک او سر نمی آید شراب جانان ای ساقی با شراب کوثر نمی آید چرمیدانم از بر گلیاس wo yan bar de gar nami aayat chiralay gul an fawan sahar az wujood e pedar bar nami aayat ul buzgham am chishish shishkas az baro pedar dil be tangaamad nunun har kis bar khazan e wujood na ghalawari am zar nami aayat nunun har قَدَرُ وُجُودِ نَو بَهَارِ اخْذَر لَمْ يَأْتِ <تصفيق> إِلَاهَا خُرْشِيدٌ مَكِيرَا تا عبد بر ما مستدام گردان که جز او بر روی گیتی هر گز خطیبی آخر نمی آید زعیم من خاک پای تو تو رو مسای چشمان محمود است دگر ای گل و وصف دریایت در خیال احقر نمی آید دگر ای گل و وقص در یاید در خیال احقر نمی آید نمی دانم از بر گل یاست بوی امبر دیگر نمی آید در دل به تنگ آمد کنون ارگز بر خزان وجود نو بهاری اخزر نمی آید کنو نرگس بار خدای وجود نو بهاری اقدار نمی آید کنو نرگس بار خدای وجود نو بهاری اقدار نمی آید تکبیر